تفتیش عقاید در اسپانیا تفتیش عقاید دیرتر از راه رسید و بیش از هر جای دیگری دوام آورد در هیچ جای دیگری تفتیش عقاید چنین خشن و بیرحم نبود در هیچ جای دیگری شادی و سروری که در پیرامون روخدادهای بزرگ آن آنبرپا می‌شد چنان پرجوش و خروش یا چنان مجلل و پرشکوه نبود تفتیش عقاید اسپانیایی علاوه بر خلوص ایمان، خواستار خلوص تبار و نژاد بود و تنها با این ملاک ها بود که فرد می توانست امیدوار باشد که زنده یا در خاک اسپانیا باقی بماند. تفتیش عقاید اسپانیایی تاثیر گسترده ای بر سرتاسر سر اسپانیا داشت. کشور به لحاظ فکری ستروند و از نظر اقتصادی عقب مانده شد. چون تفتیش عقاید اسپانیایی با حکومت آنجا در جلوگیری از تأثیرات فرهنگی و اقتصادی سایر نقاط اروپا همکاری داشت اسپانیا از بقیه اروپا جدا افتاد چون ورود کتابهای مدرن به اسپانیا ممنوع بود از این رو دانشگاه های آن به واسطه عدم آگاهی از تحولاتی که در سرتاسر سر اروپا رخ میداد دچار رکود شد نتیجه این شد که کشور نتوانست با شور و اشتیاق فزاینده علمی و فکری سرآغاز دنیای مدرن همگام شود. اسپانیا برخلاف انگلستان، فرانسه، هلند و بلژیک در حالی غفلتام وارد قرن بیستم شد که به لحاظ فکری واخورده، به لحاظ صنعتی عقب مانده و از نظر کشاورزی توسعه نیافته بود. مردم آن نه مهارت تأسیس نهادهای سیاسی مستقل را داشتند و نه توانایی اصلاح حکومت را تاریخ اسپانیا تا حدی توضیح می‌دهد که چرا تفتیش عقاید آن نقشی بسیار مهمتر از جاهای دیگر پیدا کرد اسپانیا بسیار دیرتر از مثلا انگلستان و فرانسه به یک دولت ملی تبدیل شد تا پایان قرن 15 کشور به چندین پادشاهی تر تقسیم شده بود که مهمترین آنها آراگون و کاستیل بودند تسلط اعراب مغربی بر اسپانیا تا سال 1492 که گرانادا آخرین پایگاه اعراب مغربی در اسپانیا به دست سربازان اسپانیایی افتاد بخشی از سرزمین اسپانیا در تسلط خارجیان بود از قرن هشتم، بیشتر اسپانیا تحت تسلط اعراب مغربی از ساکنان شمال آفریقا بود که جزو نخستین گروندگان به اسلام بودند. نبرد برای بازپسگیری سرزمین اسپانیا از اعراب مغربی یک دوره چند قرنی را دربر می گرفت. این مبارزهی بود که در آن نیروهای مسیحیت در مقابل نیروهای اسلام قرار داشتند، و حتی پس از سقوط گرانادا و شکست اعراب مغربی، جمعیت پرشماری از اعراب مغربی که عموماً به کشاورزی اشتغال داشتند، به زندگی در اسپانیا ادامه دادند و کشتزارها و باغ‌های میوهش را آباد کردند. حضور این بخش مسلمان نشین هرچند مردمش فقیر بودند، باعث می شد که اسپانیایی‌ها فرمانبرداری سابق خود را از اعراب مغربی در یاد داشته باشند. تفتیش عقاید اسپانیایی دلمشغولیش پایان دادن به حضور خارجیان در کشور بود و سرانجام در قرن هفدهم اصرار ورزید که اعراب مغربی یا به مسیحیت بگروند یا کشور را ترک کنند. جمعیت یهودیان در اسپانیا ساکنان یهودی به فرمانروایان اسپانیا در بازپسگیری سرزمین اسپانیا از اعراب مغربی به لحاظ مالی کمک کردند. در پایان قرن سیزدهم جامعه گسترده و ثروتمند یهودیان یک پنجم کل جمعیت حدود هشت میلیونی اسپانیا را تشکیل می‌داد. بسیاری از یهودیان با سرشناسترین خانواده‌های کاتولیک اسپانیا وصلت کرده بودند و در نتیجه بسیاری از شخصیت‌های عالی مقام و برچسبی کلیسایی و حکومتی در قرن پانزدهم از جمله خانواده شاه فردیناند، که کشور را متحد ساخت می توانستند پیشینه تبار خود را در نژاد یهودی ردیابی کنند جامعه یهودی اسپانیا به لحاظ وسعت ثروت و نفوذ سیاسی و اجتماعی در اروپا بی همتا بود در حالی که یهودیان در جاهای دیگر معمولا از اهانت و تحقیر تحمل ناپذیر در عذاب و اغلب قربانی قتل های یا یافته یا بودند یهودیان اسپانیا طی دوره های زمانی طولانی کمتر در معرض چنین دردسرها و حراس هایی قرار داشتند. با وجود فوران چندین موجه سهمگین و خونین یهودی ستیزی به ویژه نسل کشیهای دهشت انگیز سال 1391 که در آن هزاران یهودی به قتل رسیدند، یهودیان در قرن پانزدهم پیشگامان فکری مالی و علمی اسپانیا باقی ماندند. اما همین که اسپانیا کشوری یک پارچه شد، بسیاری از شهروندان خدمات ارائه شده از سوی جامعه یهودیان را فراموش کردند و با آنها دشمن شدند. بسیاری از کندی یک پارچه سازی اسپانیا در مقایسه با دیگر ملت دولتهای اروپا آزرده شدند و کوشیدند گناه این وضعیت را به گردن یهودیان بیندازند. در عصر نابردباری مذهبی، ترس از تنوع و کسرت و خراف پرستی شدید، بسیاری از اسپانیایی‌ها از حضور جمعیت گستردهی در کشورشان که دیدگاه های مذهبی متفاوتی داشتند ناخشنود بودند. از این رو هنگامی که به مساعدت ارائه شده در جریان بازپسگیری سرزمینها از اعراب مغربی دیگر نیازی نبود، جامعه یهودیان آماج بدگمانی و قربانی تعصب آشکار شد. متعصبان مذهبی و نژادی در اسپانیا طی سالهای سال احساسات ضد یهودی ابراز کرده بودند. آلونسو دو اسپینا، خاخام سابق که راهب فرانسیسکن شده بود، در سال 1459 دژ ایمان را نوشت. او در این کتاب تمام افسانه های عوامانه درباره یهودیان را گرد آورد. از جمله اینکه آنها کودکان مسیحی را به قتل میرسانند، های مسیحیان را به آتش میکشند، در کلیساهای مسیحی تلس میگذارند، نان مقدس اشای ربانی را سوراخ میکنند و به شمایل ایسای مسلوب چوب میزنند. از شمایلهای مقدس بیزارند. به ناسزاگویی به عیسی مسیح و هواریون می و زخیره آب مسیحیان را مسموم می سازند. تصوراتی نظیر این در اروپا تازه نبودند، بلکه شالوده قصه های ای را تشکیل میدادند دادند که محرک اخراج یهودیان از انگلستان در سال 1290 و از فرانسه در سال 1309 بودند، متاسبان در اسپانیا روی احساسات و خرافه های سنتی زده یهودی سرمایه گذاری می کردند. آنها در دستگاه تفتیش عقاید نفوذ پیدا کردند و از امکانات آن برای نابودی فرهنگ یهودی در اسپانیا و تصرف ثروت هنگفت جامعه یهودیان اسپانیا بهره برداری کردند. جنگ صلیبی ضد یهودی در اسپانیا در قرن پانزدهم به دو شکل صورت می‌گرفت. بخشی از آن متوجه کسانی بود که آشکارا هویت یهودی داشتند و بخش دیگر متوجه کسانی بود که تازه مسیحی نامیده می‌شدند، یعنی یهودیانی که از راه غسل تعمید کاتولیک شده بودند. تازه مسیحیان تنگنا و محصور بزرگی برای جامعه اسپانیا ایجاد کرده بودند. آنها در زندگی مناسک و آداب کاتولیکی را به جا می آوردند. در مراسم اشای ربانی مرتبا حضور می نمادهای کاتولیکی را در منزل خود نگاه می داشتند و فرزندانشان را با عقاید کاتولیکی بار می آوردند. بسیاری از آنها نامهایی برای خود برمی گذیدند که بیشتر اسپانیایی به نظر می تا ابری. اما نسبت به تازه مسیحیان تردیدهایی بروز کرد. چون بسیاری برای اجتناب از پیگرد و آزار به کیش کاتولیک گرویده بودند. نیاکانه بسیاری از تازه مسیحیان، پزشک، حقوقدان، نویسنده و کارشناس امور مالی بودند. که فرمانروایان روایان مختلف اسپانیا پیش از این در قرن چهاردهم از استعداد و قابلیتشان به وسعت بهره گرفته بودند و برخی از آنها به رغم موانع متعددی که به خاطر دینشان بر سر راه پیشرفتشان وجود داشت، به مقامهای عالی حتی در دربار دست یافته بودند. از آنجا که بسیاری از یهودیان از مهارتهای مالی برخوردار بودند، فرمانروایان دولت‌های اسپانیایی آنها را به عنوان مأموران جمعآوری مالیات و مشاوران مالی به استخدام در میآوردند. اما موفقیت و قابلیت یهودیان کینه و حسادت عمومی را برانگیخت. بسیاری از یهودیان مورد حمله قرار گرفتند و جوامعشان ویران شد. بعدها در قرن پانزدهم در جریان نسل کشیها باز هم اوباش به محل یهودیان یا گتوها که بخشهای جدا ای در شهرها بود که یهودیان در آنها زندگی میکردند یورش بردند و بسیاری را به قتل رساندند. در سال 1391 در جریان بدترین بلوای ضد یهودی، بنابر گزارشها، هزاران یهودی در سرتاسر سر اسپانیا کشته شدند. در جریان هر یک از این بلواها و نسل کشیها، بسیاری از یهودیان برای نجات خود و خانوادهشان به آیین کاتولیک می‌گرویدند. در همین دوره بود که خاخام بزرگ بورگوس به آیین کاتولیک گروید. و هفت سال بعد به سر اسقفی برگوز منصوب شد و پس از مرگ پسرش در این مقام جای او را گرفت. این بلواهای زده یهودی که گرویدن انبوه یهودیان به مسیحیت را از پیداشت سبب امده پیدایش جمعیت تازه مسیحیان در اسپانیا بود. این تازه مسیحیان پس از آن که به آیین جدید می میتوانستند آشکارا به حوزه های شغلی که پیشتر برای آنها به عنوان یهودی ممنوع بود وارد شوند. آنها به عنوان مسیحی دیگر مجبور نبودند در گتوها یا محله های یهودی زندگی کنند. برخی با خانواده های قدیمی مسیحی ازدواج کردند و در اسپانیا جایگاه بسیار ای یافتند. فرزندگان بسیاری از آنها در زندگی کلیسایی اسپانیا مقامهای بسیار مهمی یافتند مفتش اعظم توماس دو تورکومادا و چندین تن از جانشینانش اصلاف همین تازه مسیحیان بودند در طول قرن پانزدهم تازه مسیحیان کامیابی زیادی به دست آوردند و یک بار دیگر موجب برانگیختن حسد و نفرت شدند مردم صداقت آنها را در گرویدن به مسیحیت به زیر سؤال بردند. به نسبتی که تازه مسیحیان از جایگاه بالاتری برخوردار میشدند، شایعات فضایندهای پخش میشد که بسیاری از آنها در خفا عقاید یهودی خود را حفظ کرده و با جامعه یهودی در تماسند. تاریخ نگار فردریک دیوید مکاتا می نویسد، که در واقع بسیار محتمل است که تازه مسیحیان و یهودیان اسپانیایی روابط کاری دیرپای خود را حفظ می کردند. به گفته مکاتا به نظر می‌رسید که روابط بین نوکیشان و همکیشان پیشین آنها از سمیمیت و عمق زیادی برخوردار بوده است و قبول دارد که یهودیان اسپانیا، میکوشیدن به تازه مسیحیان کمک کنند که به عمل پنهانی به آن مناسک دین یهود که آنها هنوز هم در پی راهی برای انجام آن بودند ادامه دهند. اگر دستگاه تفتیش عقاید میتوانست ثابت کند که تغییر مذهب تازه مسیحیان از روی مصلحت اندیشی شخصی بوده تا اعتقاد دینی یهودیان پیشین و خانواده به جرم بدعتگذاری تحت محاکمه قرار می گرفتند تازه مسیحیانی که گمان میرفت به دین یهود بازگشته باشند برای بازجویی به دادگاه تفتیش عقاید تحویل داده میشدند. کسانی که بدین ترتیب بازداشت میشدند تسلط بر دارایی و ثروت شخصی خود را که در بسیاری موارد بسیار کلام بود از دست میدادند. البته آزمندی و تعصب دینی که بر انگیزاننده دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا بود برای جامعه تازه مسیحیان خطر هولانگیزی به شمار می‌رفت این امر به ویژه در دوره سلطنت فردیناند و ایزابلا در اواخر قرن پانزدهم مستاق داشت شاه فردیناند و ملکه ایزابلا شاه فردیناند و همسرش ملکه ایزابلا مؤمنی بودند ایزابیلا به ویژه تحت تأثیر شدید نیوشنده یا راهنمای معنوی خود که شیشی به نام توماس دوترکومادا بود. دوترکومادا مشتاق شناسایی بدعتگزاران با روشهای تفتیش عقاید بود. او میخواست آنها را مجازات کند. همچنان که مایل بود همه یهودیان را از اسپانیا بیرون براند. اعتقاد داشت که این کار خلوص کلیسا را حفظ می و از آلودگی ارواح مؤمنان راستین. به پندارهای بدعتگزارانه جلوگیری می نماید. پیش از یک پارچگی اسپانیا، تفتیش عقاید در پادشاهی آراگون وجود داشت. اما در سال 1478، ترکومادا موفق شد فردیناند و ایزابللا را متقاعد کند که تفتیش عقاید باید به سراسر پادشاهی اسپانیا گسترش یابد. ترکومادا استدلال می کرد که هنگامی که تفتیش عقاید سر جای خود قرار گیرد او میتواند از آن برای تحکیم چیرگی آین کاتولیک در زندگی اسپانیا بهرهبرداری کند. او همچنین فردینان و ایزابلا را با این وعده اقوا کرد که تفتیش عقاید میتواند تسلط سیاسی آنها را بر کشور تحکیم کند. و از طریق مصادره اموال بر ثروت پادشاهی بیفزاید شاه فردینان در پیروی از استدلال ترکمادا فواید زیادی برای خودش می دید. هرچند شاه به اندازه ایزابلا مؤمن نبود اما از منافع هنگفت مالی که مصادره اموال تازه مسیحیان می توانست آیدش کند آگاه بود خوان آنتونیو لورانت از منتقدان اسپانیایی کلیسا در قرن 19 هم کتابی نوشت که در آن شاه فردیناند را به سبب هرس و آزش محکوم کرد. به نوشته لورانت واقعیات بیتردید نشان می‌دهند که ریشه کنسازی یهودیت در اسپانیا نه دلیل واقعی بلکه صرفاً بهانه‌ای برای برقراری دستگاه تفتیش عقاید شاه فردیناند بود. انگیزه حقیقی به کار انداختن یک نظام نیرومند مسادره اموال یهودیان و در نتیجه گردآوردن ثروتهای آنها در دست حکومت بود. با آنکه دستگاه تفتیش عقاید در ابتدا علیه تازه مسیحیان وارد عمل شد اما قربانیان نهایی آن اعضای ثروتمند جامعه یهودیان اسپانیا بودند. تفتیش عقاید اسپانیا اختدار روم را قصد می کند. هنگامی که فردیناند و ایزابلا پذیرفتند که تفتیش عقاید لازم است، از پاپ سیکستوس 34 روم درخواست کردند که مجوز برقراری آن را صادر کند. پاپ میپنداشت که روم مثل همیشه در توسعه دادگاه های تفتیش عقاید و گماردن مأمورانی که این کار را از پیش برند، صاحب اختیار اصلی خواهد بود. اما تفتیش عقاید اسپانیایی با دادگاه اصلیش در مادرید به زودی با نظارت روم بر فعالیتهایش به ویژه در انتخاب مأموران تفتیش عقاید و توضیع پول به دست آمده از طریق مصادرهها از در مخالفت برآمد مثلا ترکومادا در مقام مفتش اعظم مشترکا از سوی شاه اسپانیا و پاپ برگزیده شد اما جانشینانش را مقامات کلیسا در اسپانیا برمیگزیدند و شاه بر آن سهه می‌گذاشت و سپس پاپ به روال همیشگی آن را می‌پذیرفت به همین ترتیب عواید مسادره ها از سوی دادگاه به خزانه سلطنتی اسپانیا و نه خزانه واتیکان واریز می‌شد با آنکه سیکسیتوس چهارم از این شکایت داشت که در اسپانیا از دستوراتش پیروی نمی شود، از قدرت کافی برای مقابله با پادشاهی که مایل نبود از خواسته های پاپ پیروی کند، برخوردار نبود. به این ترتیب فردیناند دست تورکو را بازگذاشت تا دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا را به صورتی توسعه دهد که تا قرن نوزدهم اساس آن بدون تغییر باقی ماند. سپرما اداره اصلی دستگاه تفتیش عقاید که سوپرما یا مرجع عالی نام داشت شامل شورای تفتیش عقاید و مفتش اعظم میشد سوپرما تمام کارکردهای دستگاه تفتیش عقاید از جمله پرداخت حقوق و سرپرستی کارکنان بسیار زیادی را که دادگاه های تفتیش عقاید های متعدد آن و امکانات دیگر را اداره می‌کردند تحت کنترل داشت سوپریما که بر حفظ آرشیوهایی که اسناد تفتیش عقاید اسپانیا را نگاهداری کردن نیز نظارت داشت و در واقع شاخهای از حکومت اسپانیا شد. ادارات تفتیش عقاید در مناطق 21 گانه به زودی در تمام شهرهای اسپانیا دایر شد. مأموران تفتیش عقاید در این ادارات دورافتاده تمام فعالیت‌های خود را به سوپرما در مادرید گزارش می‌کردند. و این مرجع عالی گزارش‌های آنها را با دقت و کفایت بسیار نگهداری می‌کرد. به این ترتیب مفتش اعظم تمام اقدامات دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا را زیر نظر داشت و اداره می‌کرد. هنگامی که اسپانیا ادارات تفتیش عقاید را در امپراتوری فراسوی دریاهای خود دایر کرد، اینها نیز مستقیماً به سوپرما گزارش می‌دادند. در حالی که حکومت اسپانیا هیچگاه از سازماندهی و کارایی خوبی برخوردار نبود، مرجع عالی دستگاه تفتیش عقاید پیوسته اهمیت بیشتری می‌یافت. سوپرما چنان قدرتمند بود که تاریخدان گستاف هنینگسن آن را تنها سازمان حکومتی که حوزه اختیارات قانونیش به سرتاسر سر امپراتوری اسپانیا گسترشیافت توصیف می‌کند. این توانمندی سازمانی به دستگاه تفتیش عقاید امکان داد که به شیوه‌ای نظاممند و تمام عیار علیه قربانیانش اقدام کند. این دادگاه بسیار کارآمد و خوب سازمان یافته تقریباً بلافاصله حمله خود را به تازه مسیحیان آغاز کرد. این شعار بالا گرفت که ما باید علیه مزنونان به بدعت‌گذاری و مسیحیان ناباب به کارزاری تر از مبارزه با رسوا‌ترین کافران دست بزنیم. دستگاه تفتیش عقاید بران شد تا این مسیحیان مرتد را شناسایی و مجازات کند. برابرتا از تعداد کسانی که قربانی دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا شدند، بسیار متفاوت است. تاریخدان لورانت استدلال می‌کند که ترکومادا که در سال 1498 درگذشت، ریاست یکی از وحشیانه ترین دوره دوره‌های دادگاه تفتیش عقاید را در اسپانیا بر عهده داشت. به گفته ی لورانت تعداد کل قربانیان ترکومادا عبارت بودند از 8800 نفر که زنده در آتش سوزانده شدند. 6500 نفر که اموالشان از سوی شاه و دستگاه تفتیش عقاید مصادره شد و نهاد هزار نفر که به شیوه های متنوع دیگر مجازات شدند.